سان برنابی از گروه جوان و فرهنگ. به نام خدا آن یگانه مهربان سلام در میان تمامی اقوام پیدای تاریخ از افسانه آغاز میشه ملل نخستین به کمک افسانه ها به تبیین پیدای انسان ابزارها و اعتقادات می میپرداختند همواره حاله‌ای از ابهام این افسانه ها رو در بر گرفته که شناخت حقیقت از افسانه رو دشوار میکنه دقیقا معلوم نیست که افسانهها حقیقت دارند یا کذب و تخیلند اما عموما این نظر وجود داره که افسانهها ابتدا واقعیت بودند و در طول زمان با بزرگنمایی آمیخته شدند بهطور کلی باید گفت افسانه یک هسته اولیه واقعی داره که در سیر تاریخیش دچار دیگرگونی و تحول شده و با اقراق و تخیلات آمیزش پیدا کرده افسانه ای رو از مردم کشور لاوس در جنوب شرقی آسیا براتون نقل می کنم به نام افسانه دو پرنده برگرفته از کتاب افسانه های ملل گاو بیرنگ نوشته نینا یافه با ترجمه از مژگان شیخی بشوید سالها قبل در دنیای عجیب و غریب اشباه زن و شوهری زندگی می و اسم مرد اوروفون بود و اسم همسرش یرا اونا به هم دیگه خیلی علاقه داشتن و با هم پیمان بسته بودن که همیشه به همدیگه وفادار بمونن و دوست هم باشن زمان میگذشت و اشباه در انتظار و استراح برای شروع زندگی جدیدی بودن اونا هر زمان به شکلی در می اومدن. بالاخره نوبت به اورفون و یرای افثانی ما رسید. اورفون بی به طرف برکه اشباه رفت و زودتر از یرا به داخل اون برکه پرید. اورفون از برکه که بین اومد به شکل یک گاو نر شده بود و یرا به شکل یک مادیان سفید در اومده بود. گاو و مادیان نمی با هم باشد. مردی گاو نر رو به مزرعش برد تا زمینش رو شخ بزنه مادیان هم در جای دیگهای مشغول حمل بار شد گاو نر دل دلشکسته و غمگین بود و بالاخره نتونست طاقت بیاره و خودش رو از صخره نزدیک مزرعه به پایین انداخت تا دوباره به دنیای اشباه برگرده مادیون فهمید که گاو نر دوباره به دنیای اشباه برگشته اونم با سرعت زیاد خودش رو به نقطه تیزی در نرده ها زد و دوباره به دنیای اشباه برگشت در دنیای اشباه یرا و اورفون دوباره منتظر زندگی جدیدشون شدن اونا مدت زیادی سب کردن تا نوبتشون بشه این بار اورفون به شکل گوسفندی در اومد و یرا هم به شکل مردی بلند قد این بار هم اونا نمیتونستن با هم زندگی کنن یرا کشاورزی میکرد و اورفون هم که گوسفند شده بود توی مزرعهش پرسه میزد و میچرید کشاورز مرد فقیری بود و تمام داراییش در اون مزرعه همین یه گوسفند چاقش بود که روز به روز هم چاغتر میشد گوسفند از این زندگی رنج می برد در تمام مدت فقط باید علف می و در گوشه از مزرعه می نشست اون نمی تونست. اون همه رنج کشاورز رو تحمل کنه و بالاخره به این نتیجه رسید که باید دوباره شروع کنه اون نرده تیزی رو انتخاب کرد و روی اون پرید اینطوری دوباره به دنیا و اشباه برگشت بعد از رفتن گوسفند یا همون اورفون اون ما کشاورز یا همون یرا دل شکسته و غمگین شد و بعد از مدتی اونم از تنهایی مرد. در دنیای یشباه اورفون و همسرش یرا یه بار دیگه منتظر موندن تا در برکه یشباه بپرن. اونا فهمیده بودن که اگه منتظر یک دیگه نشن مثل هم نخواهند شد. بنابراین تصمیم گرفتن که در موقع پریدن به داخل برکه شببا دست همگه رو بگیرن. اونا این کارو کردن و این بار به صورت یک جفت پرنده ظاهر شدن. اون دو پرنده با هم خوشحال و سرحال بودن. تمام روز پرواز میکردن و آواز میکنن. لونشون رو روی شاخه درختی در یک مزرعه بزرگ جو ساختن. مدتی بعد، پرنده ماده تخم گذاشت و منتظر جوجه هاش نشست. یه را روی تخم ها می نشست و جفتش یعنی اورفون به این طرف و اون طرف می رفت و برای اون غذا می آورد. پرنده نر که همیشه در حال پرواز بود متوجه شد که کشاورزان میخوان خاک مزرعه رو برای کشت آماده کنن. یه روز دیگه متوجه شد آتش بزرگی در داخل مزرعه برپا شده. اون از این صحنه خیلی ترسید با سرعت پیش جفتش یعنی یرا رفت و با هراس گفت اوه یرا آتش وحشتناکی داره به لونمون نزدیک میشه در این موقع صدای شئلههای آتیش و سوختن بوتهها به گوش رسید آتیش به درخت خیلی نزدیک شده بود پرنده نر از جفتش پرسید چیکار کنیم کنار تخممون بمونیم یا از اینجا بریم و زندگیمون رو دوباره شروع کنیم پرنده ماده گفت نه باید بمونیم مدت زیادی طول کشیده تا ما تونستیم با هم زندگی کنیم و تشکیل خانواده بدیم من و تو و بچه هامون باید در هر وضعیتی با هم بمونیم و هم دیگر رو ترک نکنیم پرنده نر گفت پس پس تو روی تخما باش و من از بالای درخت مراقب تو و بچه هم وقتی که پرنده نر به طرف بالای درخت پرکشید آتیش به لونش رسیده بود پرنده نر به سرعت به لونش برگشته و دید که لونه دره در آتیش می سوزه ترسید که خودش هم بسوزه بنابراین جلوتر نرفت پرنده ماده همونطور که سرش رو روی تخماش خم کرده بود توی آتیش سوخت از اون به بعد پرنده نر انقدر سرگردانی و آوارگی کشید که عمرش به پایان رسید از این ماجرا سالها گذشت در منطقه جنوبی لاوس دختری زیبا با استعداد و مهربون زندگی می کرد اون در تمام عمرش هیچ وقت نخندیده بود و یک کلمه هم حرف نزده بود زیبایی اون قابل مقایسه با ماه و خورشید بود اون دختری هنرمند درستکار و مسئولیت پذیر بود پدر این دختر ثروتمندترین مرد و سلطان منطقی جنوبی لاوس بود. اون همیشه از سکوت دخترش ناراحت بود و رنج می‌برد. بالاخره یه روز گفت: در همه جا اعلام کنید هر کس بتونه دخترم رو به حرف بیاره، میتونه با اون ازدواج کنه و داماد من بشه. ایدی زیادی تصمیم گرفتن که شانس خودشونو امتحان کنن. شاهزادهی در منطقه شمالی لاوس این خبرو شنید و آماده شد تا به جنوب بره و شانسش رو امتحان کنه. اون به دوستانش و درباریانش گفت: شاهزاده خانون وقتی چهره زیبای منو ببینه حتما با من حرف میزنه می‌زنه. بعد با غرور ادامه داد: هیچ دختری در خواست منو برای ازدواج رد نمی‌کنه چون من هم خوشتهرم؟ هم قوی و ثروتمند تازه یه <تصفيق> شاهزاده هم هستم حالا اینو بشنوید که در همون منطقه مرد فقیر و آبرومندی زندگی میکرد اون که ماجرای شهزادی پرگرور رو برای سفر به جنوب شنیده بود کنجکاف شد و تصمیم گرفت که به منطقه جنوبی بره در واقع مرد فقیر احساس میکرد که نیروی ناشناخته اونو به طرف اون سرزمین میکشه بنابراین راه افتاد و راه مرد فقیر رفت و رفت تا اینکه توی راه به نارگیلی برخورد کرد اون رو برداشت شیرش رو سر کشید و میوش رو نگه داشت و گفت آه شاید یه روزی به کارم بیاد مرد فقیر به راهش ادامه داد باز هم رفت و رفت تا اینکه توی راه به چوب درخت بامبویی برخورد کرد اون رو هم برداشت و کنار میوه ی نارگیل گذاشت و با خودش گفت شاید یه روسی به کارم داره. مرد فقیر بعد از روزها و شبهای زیادی راه رفتن بالاخره به منطقه جنوبی رسید و به طرف قصر پادشاه به در جلوی در قصر صف طولانی از مردان جوان ثروتمند و خوشلباس رو دید. اونا هر کدوم با هیجان درباره باره مهارت ها و توانایی های خودشون حرف می و خودشون رو لایق دامادی سلطان می دونستن. مرد فقیر چند ساعتی که پشت در قصر منتظر موند از میون حرف های این و اون متوجه شد که اسم دختر جوان یراست لرزشی سرتاپای اونو فرا گرفت با هیجان گفت پس پس اون دختر جوون یراست؟ آه خدای من یرای من حالا میفهمم که چرا به این منطقه کشیده میشدم مرد فقیر در آخر صف ایستاد منتظر بود شاهزاده منطقه شمالی با دختر جوون شروع کرد به حرف زدن برای دختر آواز خوند و شعرهای زیبا سرود و سعی کرد با کاراش دختر رو بخندونه شاهزاده امیدوار بود که دختر به چهره زیبای اون نگاه کنه و به شکوه و جلالش پی ببره و با اون حرف بزنه اما دختر جوان همچنان سرش رو به زیر انداخته و سکوت کرده بود شاهزاده ی منطقی شمالی که دید دختر جوان تنها نیم نگاهی هم به اون نمیندازه به همراهانش دستور داد تا هدایای گران قیمتی رو که با خودش آورده بود نزد دختر جوان بیاره. اونا چندین تو پارچه‌های ابریشمی به رنگ های مختلف جواهرات گرانبها و عود و انبر جلوی دختر گذاشتند اما دختر جوون نه نگاه کرد و نه کلمه بر زبون آورد شاه وقتی دید شاهزادی جوون موفق نشده دخترش رو به حرف بیاره از شاهزاده جوون خواست و فرصت رو به جوونهای دیگه که در صف طولانی به انتظار ایستاده بودن بده تا اونها هم بختشون رو در به حرف در آوردن خانوم امتحان کنه همه مردان جوون به نوبت جلو و سعی کردن با گفتن جمله‌های زیبا و خوشایند دختر جوون رو به خنده وادار کنند یا به حرف بیارن اونا برای دختر جوون آواز خوندن و اشعار زیادی در مورد زیبایی و هنرهای دختر جوون گفتن اما دختر جوون نخندید و نه کلمه‌ای به زبون بود کم کم آفتاب غروب کرد پادشاه از مردان خاستگار خواست تا برن و استراحت کنند. چون بسیاری از اونها از راه های دور و نزدیک اومد و خسته بودند. در میون جوان های خاستگار یه دفعه چشم شاهزادی جوان منطقی شمالی به مرد فقیر افتاد. فورا به پادشاه نزدیک شد و گفت قربان، این مرد فقیرم توی صف خاستگار ایستاده اون اون حتی ارزش حرف زدن با دخترتون را هم نداره. شلوارش رو نگاه کنین تا زانواش بیشتر نیست قربان آستین و پیراهنشو نگاه کنین تا آرنجشه پاهای برهنه و چرک زیر رو نگاه کنین اون چجوری به خودش جرعت داده به خاستگاری دختر اصل زادی شما بیاد پادشاه به شاهزادی جوان گفت آروم باش جوان من مرد عادلی هستم و هر خاستگاری باید فرصت داده بشه شاهزادی جوان با ناراحتی گفت ولی گربان این مرد فقیره و پادشاه سری تکندد و گفت فقیر و ماند، هر دو فرصتیان دازه دارند به بعد به مرد فقیر اشاره کرد که به دخترش نزدیک بشه و بختش رو برای به حرف در آوردن اون امتحان کنه مرد فقیر به دختر جوون یا همون یران نزدیک شد اون وسیلهای در دست داشت که با موی اسب نارگیل و چوب بامبو درست شده بود مرد فقیر اونو تکون داد و اون وسیله با صدای آهنگین شروع کرد به صحبت کردن اون وسیله داستان پرنده های رو گفت که لونشون رو روی شاخه درختی ساخته بودن یه دفعه لرزشی سرتاپای دختر جوون رو فرا گرفت دختر فوراً این خاستگار جند پوش رو شناخت. اون دستگاه ادامه داد و گفت که چجوری آتیش به درخت نزدیک شد. بعد گفت پرنده نر از جفتش پرسید باید پیش فرزندانمون بمونیم یا بریم؟ و پرنده ماده جواب داد باید بمونیم. پرنده ماده یه دفع شولای آتیش رو دید که به درخت نزدیک میشن. اون با وحشت از لونش پرواز کرد و از اونجا رفت پرنده ماده اونقدر ترسیده بود که همسرش رو به همراه فرزندانش ترک کرد تا دراتیش بسوزن یه دفعه دختر جوون بلند شد و ایستاد همه درباریان و خواستگاران منتظر و متعجب موندن اونا از حرفهای مرد فقیر سر در نمی‌آوردند. بله، یه دفعه دختر جوون که همیشه ساکت بود بلند شد و ایستاد دستش رو محکم روی میز کوبید و گفت نه، این دروغه، این تو بودی، نه من تو منو ترک کردی تا توی آتیش بسوزم مرد فقیر به دختر جوان نزدیک شد زانو زد و از اون تقاضای بخشش کرد اون برای یرا توضیح داد که میخواست بمونه ولی شعله های آتیش اون رو از خود بی خود کرد اون گفت که وقتی بدون یرا از اونجا پرواز کرد و رفت واقعا ترسیده بود و باز از یرا طلب بخشش کرد یرا به آرومی خندید پدر یرا با خوشحالی نزدیک شد و با صدای بلند اعلام کرد این مرد فقیر داماد آینده منه من دخترم رو به عقد اون در میارم ساعتی بعد از صفوف طولانی خاستگارا و شاهزادی منطقه شمالی خبری نبود همه رفته بودن و تنها مرد فقیر و دختر جوان یعنی همون یرای افثانی ما در کنار پادشاه ایستاده بودن پادشاه با صدایی محکمی به مرد فقیر یا اورفون گفت مرد جوان. به خاطر داشته باش که اشتباه گذشته رو تکرار نکنی. آخ، من به خاطر کار تو هیچ وقت نمیتونستم صدای دخترم رو بشنوم و لبخندش رو ببینم. ولی خب، زندگی یه نفر نباید به خاطر یه لحظه ترس برای همیشه خراب بشه. باید بخشش هم وجود داشته باشه. فردای اون روز جشن ازدواج هروفون و یرای افسانی ما با شکوح حج تمامتر برگزار شد و اونا سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کرده افثانه دو پرنده رو از کشور لاوس در جنوب شرقی آسیا براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افثانه های ملل گاوه بیرنگ نوشته گه مینا یافه با ترجمه از مشگان شیخی شیوه بیان افسانه‌ها ساده و بدون تکلفه اما این سادگی در هر کشوری ویژگی خاص خودش رو داره چنان که در فرانسه سادگیشون چندانه که گاه کمی خوش به نظر میرسه در روسیه افسانه ها زیاد شیرین و دلنشینند، اما سادگی و زودباوری در اونها بیشتر از هر جای دیگه بارزه، در قصه هندی و عربی تأثیر مجاورت افسانه های هزار و یک شب محسوسه و حوادث و ماجراها از حیجان و شگفتی خاصی برخوردارند، ازار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار سید فری برز نوربخش اجرا مهران دوستی صدا کیوان جمالی تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود